الحمد لله رب العالمين، الله علاء سيدنا رسول الله، آلاء سيدنا فاحيرنا مسلم. الله سدعي ناصران داري حناش ميمو بره ميشن. وحصرب مرکزي در دولت گذشته در مسئله و به در معاصی و در تجاری یه مقدار برستا طولانی شد من جمع رو بکنم برست رو این قبه فاعلی که ما از کردیم چند تا مثال داریم مثال ها مراد اونجایی باشه که فقط تقریب به ذهن بود که مثلا قبه فاعلی داری اختضا میکنه که بر مثلا جزا افزوده بشه بر برکیتر افزوده بشه و مراد خود اصل مطلب این یعنی برای تقریب به این مثال ها و اما اصل مطلب این است که آیا اصولا نقطه ای که در باب عقوبت هست آیا عقوبت به لحاظ خود فعله یا پس مثلا منشع عقوبت رو که قبط عقلی باشه به لحاظ خود فعله که مثلا, مثلاً شرق خمر باشه یا به لحاظ قبط فائلی است که عنوان تمرد بر مقضا مثلا حد که مقضا به تحبیر این آیونی که الان کتاب باشون داری اختیار ماست یا ظلم اعرال مولا یا نه مجموعه از هر دوست یعنی اون کیفر در حقیق اون مثال قبع پایدی برای پقریر ذهن اصل مطلب به این صورت اما اگر بگیم برای خود فعل بگیم چون خود فعل قبعش داره مثلا فرسون خود شربخم دارای فرسون است، ظلم حساب میشه به معنایی مثلا یا ظلم بر نفس یا ظلم بر خدا مثلا و مولا ارتکاب این به صلاح شروع خرم این انعکاسش در عالم کیفت مثلا به هشتا زرب شلق آیا اون عوبه و به نتیجه آیا عقوبت برای خود اون عمله انحکاس خود اون عمله یا نه اصلا این قوه تابع خود امندی چون در حالات جهر مترکتب نمیشه قوهی نداره و عقوبتی هم نیست اینها تابع عنوان حق مولا که خرمت مولا اقدامه به معصیت مولا این اصلا عنوانه بنابراین به مجرد که انسان اقدام بکنه به حق حرمت مولا عملو او قبید و مستحق عقوبت و, و در واقع شراب نباشه ما در واقع عقوبت و در واقع خوب به دنبال این نکته هستیم که شخص تمرده بر مولا پیدا نکنه به تحضیل آ حالا من چون یه آجاش رو اول دوستم به جای او میشی بزنش ما تمرده بر قانون قانون شکنی به جای حد که فرمت مولا مستیم تمرده بر قانون یا قانون شکنی رو قرار پس بگیم مهیار شکنیه نه میار هم من از هم قبه فائلی که در برسه اون تقریب مطلب بود مهیار قانوشکنی حالا بخواد در واقع شراب واقعی باشه یا نباشه اون مهیار قبه و همه هم مهیار عقوبه یا بگیم نه ما هر دو رو میخواییم یعنی باید قبه واقعی باشه فعل باشه و در این حال هم عنوان تمرد بر مولا یا حسد قرمت مولا هم باشه پس بنابراین اگر فعل بود اسیان مولا و تمرز بر مولا نبود یا تمرز بر مولا بود و فعل نبود در این دو مورد عقوبت نیست البته خود قب تابع خود همون عنوان یعنی عنوان رسا شرب خمر خود خمر قب داره همه اونی که میاد موضوع جزا میشه در جامعه و در قانون مجموعه ای این دو تاست. یعنی که برای حفظ نظامه منشون از خدم ما یک احکام عقلی داریم یک احکام اغلایی و سیر اغلایی داریم سیر اغلایی منشش احکام عقله که در احکام عقلی حالا این شار در بحثاین دو توضیحاش بیشتر در در احکام عقلی تا موضوع به تمام حدود و خصوصیات و کیفیتاش احراز نشه حکم نمیکنه اصلا مثلا فرض کنید اگر قبح ظلم داشتیم تا سقر نکنه کاملا ظلم حکم رو قوجه نمیکنه مثلا فرض کنید شخصی رو زد اگر تحمیل این زدن ظلم میگیم قبیحه اما اگه نمیدونیم خبر نداریم حدودش ممکن از یک جهت نفع باشه از یک جهت باشه ما تا احراز ظلم نکنیم نمیتونیم خکم بکنیم به این که این اما در سیر و اینطور نیست چون مرادشون نظم جامعه ممکن است در بعضی از موارد به دقت اون رو اقراض نکنند دستیم برای حفظ جامعه این نحره ساخل رو قبول میکنند این یکی از قوارق اساسی احکام عقل عملی با سیر و است پس بنابراین در سیر در نظام اغلایی در جایی که انسان معذور باشه یعنی برای نظام قانونی یک حساب خاصی گذاشت غیر از نظام تکمیلی در نظام تکمیلی چون ترجح محض نیست خود واقع محضه دیگه نظام نداره مثلا یک این قانون ظرف که اینجا هست با مثال وید. وسیله آهنی اینجا هست در واقع خیلی هم داده من خبر ندارم دستم بذارم سوزه این نظام واقعی است این نداره چیزی واقعا مزر باشه، غذایی واقعا مزر باشه بخورن برای من حالت معلوم میشه. چیزی واقعا داغ باشه، سرد باشه، آب واقعا سرد باشه، واقعا داغ باشه. اون تاثیر خودش میذاره. اما در این چون هدف نظام جامعه است. نمیاد اون واقعیت ها رو در نظر بگیرن چرا؟ چون هدفش اینه که جامعه به اصطلاح در شکل عمومی خودش رشد پیدا کنه. و اگر بنابوشه در نظام اجتماعی افراد و مکلت بکنن به واقع به ما و واقع نظام جامعه مختلف میشه و این مطلبی که مرگونه های آشانسین مرگونه های اسفانی اسپانی اسفانی قدس الله نفسی در این قصهانش در قصه درسته یعنی اینا نهمادن جزا رو از قبیل سوزاندن آتش ببینن جزا رو میشه این کار کرده این که نمیشه این کار کرد. این معناه جل احتیاط مطلعه تو اگر دی شراب باشه باید احتیاط کنه احتیاط کنه تا یقین یقین یقین همچین با تجربه مکرر که این مایه مثلا آهو اون وقت بخور این امکان داره نه که ما امکان نداره اما جامعه رو به هم میگنم لذا آمدن در حفظ جامعه یک مسئله رو به نام تنجز و حجیت مطرح کرده. غیر از وافع گراری اسمه تنجزه تنجز عبارت از این است که بتواند از اون تکلیف با مکندت رابطه پیدا بکنه کنه تا رابطه ای پیدا نکنه میگن تنجز نیست هر در واقع خودش اما تنجز نیست و این رابطه هم به این صورته که باید صورتی از کبرا و صغرا در ذهن مکندت باشه یعنی باید بزونه خمر نجسته مثلا و این مایه خارجی هم خمره اون صورت ذهنی هم یا مثلا یقین باشه یا باید طریقی رو خود اون مقنن معتبر کرده یکی از طرق عقلایی به استصوب باشه اطمینان باشه ظهور افی باشه علم باشه با این شهر در اینجا تنجسه اما اگر ها نبود مثلا من یقین یا اطمینان ندارم 30 درصد اطمینانم خبر ندیش باشه این کافی نیست برای تنجسه اما در شعن واقع خودش شکی داره واقع رو که عادت سوالی که اینجا مطرحه اینه اونی که تو به اقوبت چیه؟ اونی که مئیار خوبه بلا اشفال خود زادفه مئیار خوبه مثلا این شعب خم این بلا خود عنوان تمرده بر نظام این یک مطلب قدیهیه اما آیا این خود تمرده بر نظام به نفسه مستلزم اقوبته یا نه؟ سوال اینه مردم شیخ خیلی فرماید مسترزم ملامت هست اما مستلزم عقوبت نیست تصمه هم ملامت رو عقوبت نیست شخصی تنرده بر نظام کرد لیکن معروف شد که این مثلا شراب نیست این رو ولو مستحق ملامت هست لیکن این مستحق عقوبت نیست اون آیا میگه نه اصلا عقوبت تابع همین عنوانه بقوله من من تحبیل به تمرد کردن این نقدر روشندتر آقایه عنوان حق قرمت مولا ظلم در مولا چون حق قرمت مولا از این جد استحباه عقوبت داره و اصولاً جزا این اکاس این حالت نفسانی فائل در جزا که روز قیامت مثلا در روایات ما هم آمده این ما این مثلا هم اغلایی و هم شرعی اونی که معیار از بیش و برای قب در باب اعتبارات قانونی و اونی که موضوع است برای جزا همین تمرده، آزا من اسمش تمروضه بر نظام قضیصه که واضح تر بود آنگن ظلم بر مولا چون الان من توضیح از می‌کنم در اصطلاح قانونی روز کسی تعبیر ظلم بر قانون مستح نمی در مذ... مکاتب حقوقی روز چیزی اصلا به ذهن شما شاید تا غیر دیگه در اصول ب مثلا بگیم ظلم بر که میکنه مثلا ظلم بر قامل اصاسی میکنه ظلم بر مجلس میکنه بر مثلا جمهور میکنه حیات دولت اصلا مسئله یه ظلم بر که در اصطلاحات معامله ظلم بر قانون یا قانونگذار در اونجا مطرح نیست بله تمرد بر نظام مفرقه پس صحبت اساسی اینه فعا یا جزا انحکاس این تمرده انسان بر نظام اون نسال هیچی دنبرای تقریب مطلب بود اون باب سون هم بر این که خود حدکه حرمت شرقم از حرمت داشته بود مثل در خونه شراب کرده شدیم حکم اگه علنی بود و حد کرد حالا اگر این تو شدیم صحبتی که در اینجا هست اینطوره خوب خود قدر صحبت اینه که آیا اون جزا اگر ما بخواهیم طبقه قوائد و و نظام اجتماعی خب دقیق کنید مناسب با افکادات اوقلایی اغلائی جزا را قرار بدیم جزا را تابع چی قرار بدیم اون قبح فعلی یا حالت فاعلی که تمرده یا بیاییم جمع بین هر دو بکنیم بگیم ابتلاعا اونی که قدیه خود فعله لخیم برای سیره اغلائی یعنی خودش را به خم داره شما بیدان میتونید مثلا این نه لذی نه کنن نه هم ولر یاتوم نه ما آتشه کنن کیوتو نه نه این آتشش حالا بخواه ندیم اشیا درون پلومار هستم پس کل یاتومها پلوماره که در اصل فردا پلوماره خوب اما باطنش آتشه یا کنن کیوتو نه نه درک پس هستیم یعنی این جو بیم بگیم اصلا تابه اون لواه یا بگیم نه تابه تمرد یا بطور مرکب مرموای آیا شما چهند از ثانی دیگران حتی استاد و دیگران ظلم علی المولى حق حرمت مولا عمدش اینه اون سر رسید یاد هم بگیم نه اونی که قوبش داره اونی که زمینه استحقاق و عقوبت داره همون شربخانه لكن جزا دقت بکنید احکام جزایی خودش یک خصلت دیگری هم داره اون جزا مثلا فرض کسی پس این خوردن شراب اونجه به درد مهده برش میشه با مثال میخوام بگم این اگر شراب رو خورد اون اثر واقعیش باید میشه اون ملاقاتش باید میشه به بحث داره که بحث هر اینه که در نظام قانونی آمدن جزا رو بر ارتکاب خود فعل قرار دارن برای حفظ جامعه جزا رو قرار دارن برای کسی که متمرده بر نظامه حالا این آیا ممکن است بگیم در هر نظامی هست یا مثلا از خصائص نظام اسلام ما این شاهد تو بحث حال عرض میکنیم مثلا حدیث رفت رو باید اینجوری معنا کرد معنای اساسی حدیث رفت مثلا سندن به نظر ما شبهه داره حالا تقدیر این که سندن قبول بکنی مراد جدی از حدیث رفت اینه که در این شیشت حالت رفنان اممتی مثلا ست یا تست در این شیشته حاله شما مخالفت کردیم ولو شما بسا تکلیف را انجام ندادیم لیکن تمرده بر نظام مکردیم تمرده بر قانون نیست رفنان اممتی ست یا تست و اونی که بر امت برداشته شده اینه یعنی چی؟ مثلا از سر و ونسیان و, و ما اوک رو علی و مستور رو علی ما مثلا در حال اصطرار شما خلاف نظام انجام دارید این اصطرار رو میانگه درست شما خلاف نظام انجام دارید اما تمرد نیست چون اصطرار داشتید اکراف کردن فرصایی پلیس بیدید یکی ماشین اصطرار قرمز رشد خود رفت گرفت. بعد دید یک آقای فرضون پشت سر ایشون حثه‌ای گلوشی گفت گفته اینکه ولا نمی‌گوشه خب دیگه خیلی مجبور بودید با زور نصیقه از شوهه حالا اذکار اون اگه جاریه بکنه دیگه همون نظام میشه ممکن است در برزی ها نظام بگه حتی در حال اجرا هم ما این اثر رو ببینیم اون بحث دیگه‌ست اما به طور طبیعی در این شش حالت یا در روایات اهل سنت سه حالت یا بعضی از روایات ما چهار حالت، بعضی از روایات ما 9 حالت بیشتر هم داره. در این حالات چون اراوات بیشتر از 10 تا در این حالات چون عنوان تمرد نیست، عقوبت برداشت میشه. نه این که مخالفت نیست. فرض شراب رو خورده اما اصرار داشته. من باب مثال اکراه شده. اثرش روشن. پس بنابراین اون چیزی که ما از مجموع خلاصه بحث اول اون که ما از مجمع میفهمیم ملاکات در خود فعلاً ظاهرش اینطوره اما اونی که موضوع احکام جزایی است غیر از مخالفت نظام با عنوان تمرد هم سر بر کنه و این تمرد بعد از تنجس اصولت معیار اینطوره وقتی یک تکلیف تنجس پیدا کرد اون وقت عنوان تمروز بر نظام اگر تمروز بر نظام تنها بود یا خود عمرز تنهایی بود اینها جزا ندارند. اما قبل تهری جای خودش محبوظه آثار جزایی براش بار نمیشه ولو با التفات هم انجام بده مثلا اکرایش کردن با التفات شراب بخوره این التفات داره به شراب بخوره نه که نداره پس اون قوله فعلی شراب هست وا که موضوع احکام جزایی نمیشه در احکام جزایی میان جزا رو عنوان علی نظام، حالا این تعبیر من یا به قول آیون حق و مولا، بالي جه عن قصور عن, عن ليس جه الاذكار ان اسماعيل لا يقبلون انه يقول انا كنت جاي مثلا قال انا جليل لهال من قال لو قال يقول ما علم وقال تعلم قال مع الله ايه ذا الانظره على هكذا يعني الانظره الاجتماعيه كان بإمكانه هيرات الجهد ولم يفرق كأنه عالم يعني ادله الموالى حسن ادله الموالى علموا وفعلوا على صغير صحتها مش الجاهل من الجاهلي ما اقول ان الانظره لا الانظره الاجتماعيه نفس الشبهه نفس الشيب. إذا ثبت أنه بالفعل معذور وما كان, ما كان له أي طريق وما كان له طريق لإستعلام الحال في دولة الحال إذا كان قاعدة قانونية موجودة للأمدار لا مقصر إسرائيل. إيه لا المقصر يعني الجهد المقصر. يعني بعباره فروهم يقولون مثلا أقول مثلاً على أنفيرا واحد يدعي في غير محله لأن رسالة الله موجودة. هو الجال قصور من عنده تقصير من عنده لا يقبل من هر جهه. وعندنا هم لا يقبل الجهل في جمل من الموارد. مثلا يقول أنا ما كنت على أن الإنسان يعني بالنسبة للآثا ما کنته علماندن انسان در افتادی شنگان علیه کفاره خلوه تعلیمون دارن کفاره ثابتن لا علمون دارن این راجعه به این قسمت به سطح دومی که و دوم و سومی که در کلمات مقهوم محقق اسفانی وجود داشت و این از کم در کلمات آزن کلن وجود داره در که بایه هست مقهوم استاذ و دیگران اون که معیار جزاء یا احوبت رو عنوان تمرد بر... ظلم بر مولا و حد که قرمت مولا حساب کرد این رو یه مقدار توضیح بدیم آیا این حالا واقع نظر که حد که مولا به چیست فرصد ما میگیم حد مولا به مخالفت قانون متمردن فرصد ایشون بکنه نه به تمرد قانون این حد مولاس. مولاست آیا اصولا این مطلب درست تفسیر جزاء و ققوبت و کیفت و عنوان حت که مولا حالا خود بلا هرز قبح صحیح باشه فاعلی باشه هر دو باشه آیا این تعبیر تعبیر صحیحی است اصولانیان من عرض کردم ببینید دقت بکنیم تفسیر قانون خودشی که از مسائل مهم در مسائل حقوقی است و اینکه حقیقت قانون چیه و ما چه تصویری از حقیقت قانون داشتوش این بحث رابطه به بحثه کلامی و حسن و نداره باصی مبحث فلسفی یا کلامی نداره. این بحث قانونی است. مثلا الان قانون رو در مثلا زمان ما تجلی اراده مردم می‌دونه. نظر قانون رو این قانونی که در مجلس جاري میشه تصریح میشه چون مردم رو مردم هستن که نماینده‌ها رو انتخاب می‌کنن، نماینده‌ها هم در مردم رو مرد. پس در اینجا دیگه مولا و عبد مفرح نیست. یه کسی مولا باشه، باشه. یا به همون اصطلاحی که سابقاً مادر ما در به در حقیقت با اسارت و عدم ولای، قانون رو تجلی اراده خود مردم میتونه. این مربوط به خود ماست. فرض کنید اگه قانون گذاشتن مالیات بدن، این مال خود مردم قانون گذاشتن کوچه و ترامیت کنن، خیابان‌ها ترامیت کنن، قانون گذاشتن که مثلا باز مدرسه اینطور باشه، باز نظام آموزشی مجانی باشه، نه اینکه یک مولای وادار کرده بحث مولاغعت اصلا در این نظام کلا مثلا غیر از اینکه مثلا این صد و خورده ای سال که نظام بردگی کلا در دنیا مطرح نیست اصولا قبل از الغاء نظام بردگی این مطلب که ما قانون رو چی تصویر بکنیم چه جوری مثلا تصویر کتابیاندار جان ژاک روسو قرارداد اجتماعی قانون رو یک نوع قرارداد اجتماعی بین افراد این پروتوکولیشون چه قراردادیه؟ ما با هم میشینیم 100 نفر صد نفر سفر نفر 92 میلیون نفر صد میلیون نفر با هم یه قرارداد میزنیم که این کارها بشه. این رفتی به عبد و مولا و این رسمت‌ها نداره و مسئله مسئله به اصطلاح مولایی و حدت حرمت مولا نیست. بلکه در حقیقت در این ها اگر کسی قانون رو مراعات نکنه به خودش درو زده نه به مولا. حد که حرمت خودشه با قول نشان داده که فرهنگ اجتماعی نداره نمیتونه در جامعه با یک فرهنگ اجتماعی زندگی کنه بحث این نیست که ظلم بر مولا کرده اگر ظلمی هست بر خودشه چون قانون حرف هر حرف کسی نیست صحبت این که کسی بالای سرو باشه و حالت و آمریت داشته باشه مفرح نیست این حرف خودشه این حرف حالا توسط. حالا فرصوی در کشورهایی که نظامهای حزبی دارن به اصطلاح موزه ما نظامهای ایڈالوژیک دارن نظامهای فکری دارن مثل کشورهای کمونیسم دارن چون اینا میگن یک نظام فکری معین جامعه رداره بکنه اونا فقط از این راه میان میگن حزب فرصوی حزب کمونیستون با مثال او میاد اراده ملت رو تفسیر میکنه یا به یک تعبیر دیگری نخبگان جامعه میان میان اراده ملت تفسیر میکنن با اون چیزی که به سلام جامعه از رفی میکنن پس در اینجا اگر هم چون تبییر دیکتاتوری حزب رو کمیسا دارن البته اون دیکتاتوری حزب خیلی چیزی انقدر بیشتر دیکتاتوری به طبقه کارگر یا پروتاریا و اول خودشون به طبقه کارگر ارجاع میده میگن ما اگر هم اراده ای در اینجا مطرحه اراده طبقات ضعیف مردم که و نمایانگر رو و اما مسئله مولا با عبد و برده و این مراحل اصلا کلا به طور کلی مطرح نیست و بنده از کردن که خود این که چه نحو نظام اجتماعی چی رو تفسیر بکنیم حتی در یک از مسائل ریز و اصولی هم تأثیر این تصور نکنیم بی تأثیره در این یک تفسیر یک تفسیر از قانون تفسیر متعادلیه یک تفسیری از همان تفسیر متعارفی که در جامعه‌های خاص مثلا گذشته بوده یا در جامعه مکه و مدینه جامعه اسلامی حتی تا حدود مثلا 150 سال پیش در جامعه اسلامی برده وجود داشت قبل از اینکه نظام بردگی در سطح جهانی الغاء بشه و اون تفسیر اینه قانون رو رویت بر اساس همون رابطه عبد مولا تفسیر می‌کنه این نمال اون به جای عبد قانون رو میذاره حاکم رو میذاره رئیس اشیر رو میذاره پادشاه رو میذاره یعنی همون تصویر و همون رابطه ای که بین عبد و مولا برقرار میشه همون رابطه بین فرسین قانون بین حاکم و بین مردم برقرار میکنه این همون رابطه هیچ فهم میکنه و اون رابطه هم میاد در قانون قانونگذاری و جهات معنوی تاثیر میکنه هم میاد در جهات ادبیات تاثیر میکنه مثلا من مثال اگر شما آمدید گفتید که برد نباد مخالفت مولا بکنه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیخ این ضربم لاغ مثلا یک مثال یک ادبیاته در این ادبیات محمد مملوک لا ینگ را علاشه تنبال بکنیم این تو مقام عذریاته این تو مقام قانون هم میاد فرق میکنه تو مقام قانونی هم هست تو مقام تعبیری هم هست و اون آثاری که ما در قانون گذاری در اصول مثلا میخوایم باش کار بکنیم اونها هم خواهی نخواهی منعکس میشه حالا این من چند تا اثر رو مثال بزنم تا کاملا روشن بشه این مطلب مثلا اولا نظام بردگی به لحاظ تفسیر قانونیش این نظام بردگی یه توضیح بدن چون در طول زندگی بشهرش در جامعه های مختلف که در زمان واحد یا زمان در طول زمان نظام های متعددی حاکم بوده مثلا در بعد در جامعه نظام بندگی خود جامعه اسلامی همچه بوده در بعضی از جوامه نظام فئودالیته یا نظام فئودالیسم یا نظام ارباب و رعیت بوده مثلا الان در جامعه های متعارف ما نظام کارگری کارگر و کارفرما مثلا رابطه بین کارگر و فرمایدار و مالک اونجا رابطه بین عبد و مالک رابطه بین عربا و رعیت این خودش نفسه نظامیست که خسلت های خودش رو داره در نظام عرض و مولا اساس کار بر این است که عرض به قول تبیر کفایه به شراشر وجوده برین که است. در نظام برگی طبیعتش اینه این انسان به تمام اجزا یعنی وجودشو پوستشو بشرشو این دل به تمام اجزا ملک مولاست خب طبعاً حتی طبیعت تمام اجزا ملک مولا شد تصرفات و منافعش هم ملک مولاست تحرکاتش هم تحت اراده مولاست طبعاً اینطور میشه دیگه مثل اینکه شما در وابه بیگ مثلا به باب وساز تصییر عرض میکنن. شما بیگ رو تصییر میکنین نقل این این کتاب رو نقل میکنید خب وقتی نقل این شد منافعش هم باشه دیگه همه همین تصرفات شما تو کتاب تعریفلا میکنه اما در اجاره شما میگه نقل منافع در اجاره نقل منافع یعنی منافع کتاب اما عین کتاب مال شماست میتونی کتاب رو بخونه میتونی تو خونه بمشینه اما در ااریه نقل انتفاع در آریه شما اگر خاصین برید سفر خونه رو به کسی ااریه میدین نه اجاره ااریه میدین در اینجا در حقیقت حق بهش بشونتقل میکنید نه این خونه مال اون میشه نه منافع خونه مال اون میشه و لذا اگر کسی فرسون شما سفر بودی آمد یک ماه خانه رو قصد کرد خب باید از اون قجرت المثل رو بگیرن از اون قاصد اما این قجرت المثل رو به اون شخص میدن به ماله خیلگه وقتی شما خانه رو درست کسی آریه دادی در قضی سفر رفتید منافع خونه میلی که اون شخص نمیشه یعنی که مستعیر نمیشه حق انتفاع داره میتونه از خونه استفاده بکنه اما اگه یک قاسموندونش کرد یک ماه نشه بعد پول داد به اجاره مستاجر اون پول رو به اون شخص نمیدن تو خونه شخص. به مالک میده اما اگر شما همون خونه رو اجاره بدی 6 به کسی کسی آمدی یک ماه قرض کرد اون پول رو به مستاجر میده اون که تو خونه نشسته مگه چون اون مالک منافعه این فرق داره این ملک منافعه و ملک انتفاق ببینید این همین مثله در ملک خود ذات انسان هم مثله هست اینجا مثال دادن یک دفعه ذات انسان ملک دیگره هم نظام برگیه اون هم نظام عبدال مولاست. خب طبعا تمام تصرفاتش در اختیار چون ذاتش در اختر... وجودش در اختیار گاهی اوقات نه وجودش در اختیار مولانا نیست در اختیار مالک نیست اما منافعش تماما در اختیار اون این بیشتر نضام همون ارباب رعیتیه که حالا هم در شهرها از در دیاره هست اون که مثلا سابقاً این طور یه شخصی می آمد یک بهر رو میخرید، خوری رو یا زمین زراعت رو با همون زارهی که روش بود با خود کشاورز، اما نه که مالکش می شود. همون کشاورز سر زمین بود سر این نظام ارباب توی ایران هم بود دیگه تو ده اربابا این هم به اصطلاح کشاورز هم همراه زمین بین ارباب جدید میآمد انتقال پیدا کرد به این اربابه که ملک ارباب نبود اما همراه زمین بود کار او در زمین از اربابی به ارباب دیگه منتقل شد اما ملک ارباب نبود در یک قسم سوم که نظام مثلا کارگر و سرمایدار باشه در اینجا حتی همراه زمین هم منتقل نمیشه کارگره اموزوی ها توی این کارخانه کار میکنه و زردان رو کار میکنه لیکن وقتی که وارد کارخانه شد عمل خودش رو در اختیار سرمایدار قرار میده دیگه اختیار در مورد عمل خودش نداره اما این نیست که ذاتش برده باشه یا همراه اون عملی که انجام میده جابجا باشه خودش مستقل ده. البته عملش هم درست افتر دیگه رو رو, رو پس این نظام ها به لحاظ نظام اجتماعی فرد در سریع اینه که اگر این نظام فرد کرد ما نمیتونیم ادبیات واحدی رو برای حسد کار ببریم مثلا در نظام بردگیش همینه یعنی عرض در ممنوع که لایت اما شما یه کارگری ایش توی این کارخونه کارفر است اون کارخونه سند کاراشی یا کارخونه تولید مثلا فرس شدند توی این کارخونه کار، بگیم شما کارگر توی اینجا سین اول ماملوک لایق داره خب اینجور کلید اول ماملوک لایق داره خوب دقت بکنید ترجع کردید شما این صحبت رو خوب دقت بکنید شما نسبت ده در نظام بردیگینه عبدالمجموع کلاغردرا علاشه اما شما نسبت به یک کشاورزی که رئیته به اون ملک کشاورزی نسبت میش خودشه باز هم نمیگی عبدالمجموع رو علاشه چون اون رو همراه زمین هست یه درآمد یک سوم یک پنجم از زمین میگیره برای مال در مال تصرف میکنه اون مال ملک خودشه هر کی میخواد باشه اما عبد اینجور نیست عبدالمجموع میتونه زن بگیره او با زمین همراه میشه اما سنه شکنه خودش بچه شد بچه خودش مشکل نداره که شما در باب رعیت نمیشون بکن عبدالمندو که لایت داره علاشه این البته این بین پرانسر از ارزو این آیه مبارکه عبدالمندو که این خیلی نقطه جالبیه آیا این یک تبیر عدبی چیزای که که قانونی است؟ خیلی فرق دارد، خیلی فرق داره خیلی فرق کنه با حال ما قالباً از این حکم قانونی جرفتن در هر جور شک کنم اگر اول ممنون که از داری از ما باشیم و آیه ما تعبیر ادبی است ما باشیم و ظاهر آیه چون دارم غربه الله مثل هم اگر مثل بود این یک تعبیر ادبی نه تعبیر قانونی چون در تعبیر ادبی لازم نیست اون مطلب حق باشه چون در تعبیر ادبی هدف اساسی تاثیر در احساسات و عواطف و تحریک افاده مثلا میگه آقا رستان این کاری کرد مثلا میگه سربازا رو تغییرات میکنه میگه رستان اینطور سربازا با رستان اینطوروزه حالا ممکن رستانو خارجی اشته باشه موهوم باشه اما برای تحریک احساسات خوبه در تعبیر ادبی لازم نیست حق باشه اما در تعبیر قانونی باید حق باشه ایرازوی امکان در داره پس اگر گفت امدن من بود کنگایید چون خب واقعا تصرف بعضی از موادی با دردگان که که پارشو می بعضی من فیلمان دیم هست تو ساله هم نوستن اصلا مثلا تو امریکانی سیار کنم این تو دیگه آبا جوشیده آبا جوشیده بود این داخلی زنده تو دیگه آبا جوشید خب ده. این هست این نحوه تصرف هست ا با این تصرف باطل برای مثال ادبی خوبه ظرفا لاغمت با من عبدن را لایت علاشه اگر من ما باشم و که این مثال ادبی اما در فیخه ما اینطور تو عباب رق های ما به این تمسک کردن به اطلاق عبدن مملوکن و من توضیح حرف کردن در روایات ما دو جا به تمسک شده در روایات نه در اطلاق فوقه در روایات ما دو جا تمسک شده که طلاق در اینجا ربایت معارض داره هم ما معارض داریم هم احل سنن ربایت داره که اگر چون ازدواج عبس به ازن مولاست تلاقش هم مولا میتونه تلاق بودی یا تلاق مال خود عبده از امام سوال که میگن در تلاق بیال مولاس و قاله الله تعالی غرب الله عبدا من میکن لا یغز را علاشه حرف شیع اونا تلاق لكن همه معارض داره که نه طلاق دست مولانی نیست طلاق دست عبده این حدیث رو اگه شنیده باشیم که خیلی عذر میشه از طلاق و اخده به يد من عقد به این شنه نزولش اینجاست مثلا این شنه نزول این حدیث این عبدالله بن عباس کرده نعب عبدالله بن عباس گفت عبد با اجازه مولا ازدواج میکنه اما طلاق دست خودشه عقد به سا. یعنی اونی که رابطه زوجگی داره طرف مولا چرا تو داره از طلاق بیاد عنوان اخر این من اخر الرساله اشارهی است کی عبد یعنی عبد عبدی که رابطه با خود زن داره مولا چه رابطه نداره معنای کی اجازه بده میخواد مولا اجازه بدهن یعنی طلاق دست عبد ازدواج اجازه بده مولا داره اما طلاق احتاج به اجازه مولا نداره این از طلا به عنوان اخر الرساله منظور محل کرام از سند بین احرس ما هم رو باید سنیه داریم که بیاده عبده پس یک موردش معارضه مورد دومش بلا مورده. اما کل مواردی که ما داریم یه مورده در حقیقت کل مواردی که ما به این آیه مورده در قانون همه از صبح شده یکیه اما فعاه ما اله ماشالله همه صبح کرده و این خیلی آثار برزده که این یک مثال عذبی باشه یک تعبیر عذبی باشه یک تعبیر قانونی شما میتونید بگیم عرض در مقابل اراده بولو عبدالمنون کن دایر داره علاشه. اما الان برای کارگر نمیتونی مستن بگیم مرشنی این توجه بکنید، این مسئله که ما هم نکته قانونی باید داشته باشیم هم در جهات عذبی ما به کار برده میشه و هم تأثیر و اصولی داره چون وقت وحب... که این مسائل کمتر در بیانات آقا آمده آثارش ان توضیح خواهم داد و صلی الله